خیر خوب دوستان سلام آرش هستم از رادیو دال این مدت یه مقدار من احساس می‌کنم ماجرا داشش تکراری می‌شد حوصله منم روزش و داشت سر می‌رفته همیشه با بچه‌های صحبت بکنم که قضیه مهاجرت کم کم داشت لوس و خسته کننده می‌شد برام الان اینجا باقی علی سخابتی هستم حداقل چیزی که میتونم بگم اینه که یه پادکست دارم به اسم پادکست 822 علاوه بر این یه وبلاگ هم دارم به اسم alisakhavati.com میتونید مراجعه بکنید ببینیدش الان از غذای روزگار دست سرنوشت یه جوری ماجرار رو به هم زده که الان من تو منزل آقای استخابتی نشستم و کنار هم دیگه داریم این پادکستو رو زرد میکنیم سلام هم سلام حال چطور؟ مرسی ممنون و چکر. تا اینجا روز خوبی بوده؟ تا اینجا بچه <محن> ها دقیق نمیدونم برای شما روز خوبی بوده برای من روز بری بوده خب چیش بد بود برای تا؟ بالا اینجاش بد بودش که بزاری دیده کلی به بچه بدم که الان ما داریم چیکار کار میکنیم ولی همین شد دیده بعد قضیه چیه الان من علاقه یه مدتیه داریم من دیگه روی نرمخصر کار میکنم روی برنامه داریم کار میکنیم با همدیگه داریم جلو میبریمش و تاش قدرت داره جلو تعمیر علاقه داره خوشحالتر میشه من دارم ناراحت می‌شم شو علاقه من حس نماینده رو می‌مینه بعد این یه جا کلیش می‌کنه اینجا باگ داره اینجا باگ داره من خب این باگا روز به روز بیشتر میشن برای همین دارم میگم البته منم خب برای من روز خوبیه کم کم داره کار به نتیجه میرسه خوشحالم اما ما اینه که که الان ما به اینجا رسیدیم از کجا شروع شد به اینجا رسیدیم از کجا شروع شد این خیلی سوال جالبیه الان میخوای یه مقدار خودتون بگید چون فکر شما روش به خودتون یه مقدار بگیم بهتر یه نفر بتونه دید پیدا کنه که چی چون در واقع من رو انداختم تو مسیر شما شاید بر همین مسیر که شما داشتیم رفتم دادا من خودمو انداختم تو مسیر مسیری که شما داشتین می‌رفتیم چطور مسیری که منظورم می‌رفتن این بود که من یه بار یه دنبال یک کسی میگشتم که برای صدای سلامت که یکی دیگه از کارمونه یه محتوای آنلاین تولید بکنه به خاطر همینم یه متنی رو روی یه نوشتم که اگر کسی میتونه کار بکنه تو خونه برای خودش میتونه ترجمه بکنه میتونه یکم مسئولیت کار خودش رو به قذیره بدون اینکه نیاز به تایتل شغلی یا ای داشته باشه که مرتبط به یه تخصص خاصی باشه یاده میگشتیم که دنبال آدمی میگشتیم که ذره فراتر از چهاررشوب موجود بتونه مسئولیت این کار رو به و از راه دور از تو خونش از هر جایی که هست انجام بده. فرآیند خیلی خیلی جالبی بود ده دوازده نفر به واژه که من تقاضا کرده بودم کارنامه فرستادم یعنی تقاضای کار یه نامه ای که مشتاقن این کار انجام بدن، و الانجای که میگیم کارنامه فرقش با رزومه از نظر من رزومه ی تاریخی رو نشون میده که شما مثلا تو ده سال یا پنج سال گذشته چه, کار... چه کارایی رو انجام دادی چه درسی خوندی چه مدارکی رو گرفتی چه سوابقی داشتی بیشتر خیلی گذشته هست ولی کارنامه تمرکزش به یه کار خاصیه که توسط یه نفر معرفی شده یه جاب اوپنینگ یا یه پوزیشنیه که ممکنه حتی خیلی هم تعریف دقیقی نداشته باشه و یه نفر یه, یه کارفرما احساس نیاز بکنه که دنبال یه همچین آدهی میگرده که یه خلایی رو پر بکنه یه فضای خالی رو یا حتی یه فرصتی رو که نصف نیمه میبینتش توسعه بدتش و یه فرصت بهتری بکنه کارنامه تمرکزش بیشتر روی این فرصته برای ها و روی های اون فرده که بخشیش رو به شکل پتانسیل بالقوه و بخشیشم بالفعل می‌بینه و ابراز آمادگی و اشتیاق میکنه که مشتاق این کار رو انجام بده مشتاقی که بخشی از این فرایند حالا من میگم توسعه یادگیری خلق هرچی که اسمشون می‌خوایم بذاریم بشه یه چیز روتین از قبل تعریف شده این نیست که بگیم مثلا ما حسابدار میخواییم با 15 سال سابقه کار برای یه همچین کاری شما از ریزیون بفرستی ولی اگر بگی که ما یه نفر میخوایم که وضعیت مالیمونو بهتر بکنه یه دید مالی بهمون به بده شاید اینجا دیگه رزومه جواب نده. این کارمه برای همین شاید برام خیلی جالب بود. به جای اینکه من خودم ارزه بکنم، باید بگردید ببینید من کدوم سراخیو میتونم برقم. گفتین ما این مساله رو داریم، حالا کی میتونه بیاد این مساله رو حل بکنه. بود بود. بود این یه بعد جذابیتش بود. یه بوده دیگه همین این که آدم به چالش کشیده میشد. حداقل تو کارنامه رزومه یه مقدارن خسته کننده است. خب این بودم منتهیها. منادم برای کارنامه‌ای که برای شما فرستادم اصلا کامل شروع کردم با یه دید ای گذشته خودم رو مسائله کردم بررسی کردم برای خودم یه تجربه لذت بخش بود یعنی جدا از اینکه من میتونستم با شما هم‌کوره بکنم یا نه این که یه ای من تونستم تو این پروسه شکل بدم که یه نگ نگاه دیگه به گذشته خودم نگاه کنم خیلی تجربه لذت بخش جالب بود اگه شد اینو مثلا حتماً تو دو کانال رو گذاشتم بچا ببینن جالب‌تر از اینکه زمان گذشته بود یعنی یه فاصله گذشته بود از منتشر شدن اون تقاضا و کسی رو که من میخواستم پیدا کرده بودم اون فرایند طی شده بود این هفتشتر نفر کارنامهان رو فرستاده بودم من دوباره ازشون یه سری تست و تمرین گرفته بودم نتایج مشخص شده بود و من فکرم زمانی که تو این فرستادی فرستادی من با اون شخص صحبت کرده بودم به توافق رسیده بودم و اولین کارش رو بهش داده بودم ولی کارنامه تو طوری بود. که من به یه سمت دیگه ای برد یعنی من یه کار دیگه ای داشتم که این به, <تصفيق> <تصفيق> به بومت رسیده بود یعنی یک سال بود ما تلاش میکردیم این ارمفزار رو از راه های دیگه ای به توسه اش بکنیم و به نتیجه نرسیده بودیم که حالا این موضوع بحث امروز ما نیست که چرا ما اونجا به نتیجه نرد ولی یه تقریبا یک سال یک سال و نیم سابقه داشت این کاری که من با تو کردم. کارنامه تو منو به این فکر برد که خب حالا اون تولید محتوامون که حل شد بذار ببینم آرش که گفته من برنامه نویسی میکنم دوست داره تو این فاز بیادی همکاری دیگه ای بکنی یعنیم جالبه من چون کارنامه که فرستادم در واقع تصور این بود که یک شغل با عنوان تولید محتوا وجود داره من با این دید اصلا شروع کردم اقدام کردن بعد شما اینه گرفتین کاملا یه دیگه؟ نیگه <تصفيق> اصل ماجره اینه که من خب قبل از اینکه این کار رو بکنم توی شرکتی بودم توی شرکت کار میکردم یک تیم فوقالعاده، سرپرسته فوقالعاده، مدیریت عالی جنس کار خیلی به رویات من نزدیک بود تو تیم تحقیق توسعه بودی اما در نهایت من هر کاری میکردم یه جوره شد فیتنه میشدم توی اون تیم یعنی یه مشکلی بود من نمیدونم چی بود توی اون تیم هر چقدر کردم فیت نشدم از تیم اومدم بیرون بعدا سر کردم جاهای دیگه برم توی شرکت دیگه حالات استارتاپی هم داشتش خیلی هم فوق العاده تیم خیلی خوب پر از افراد خوب آینده دار دیدم اونجا هم نمیتونم کار بکنم دیدم اونجا هم نمیتونم کار بکنم چرا نمیتونستی کار بکنی مزخ چلنج چی بود <تصفح> بیش به کرده بودم حالا اینتروی به صورت بیانش نکرده بودم نمیدونم چرا واقعا شاید چند تا مسئله است اینه که یکیش میتونه این باشه که واقعا مسئله اونا مسئله من نبود برام دغدغه نشده بود یعنی خب آره تو یه استارتاپی داری میخوای فلان کارو بکنی الان میخوای دیتابیسش مشکل داری میخوای دیتابیسش رو بروز کنی منم شاید بتونم آسن کمک بکنم اما خب این دقدقه من نیست بعد قائده خیلی از افراد میتونم فاراد دارم پول میگیرم میرم این کار انجام میدم اصلا مغزم رازی نمیشه که یک چیزی که براش مهم نیستش رو بهش فکر بکنه و انجام بده یعنی بهش میگن خیلی خوبه الان پول گرفتیم اوکی پیشین شروع کار کردن مغزم میگه نه نه من فکر نمیکنم خیلی مهم باشه راست دیشب فیلم مریاد تو دیدم کامون چرا پول میدم بهت برای این ساعتو در کل به نتیجه به نظر نتیجه گیری حداقل بود که زندگی کارمندی شاید خیلی با من جور نباشه علی بهر اینکه من به شدت آدم تنبلی هستم صبح حداقل دو ساعت من با طول میکشید تا از خونهم برم اون محل کاره یکی از چیزایی که اصلا تو مصاحبه من فکر من جذب تو شدم هم که گفتی تنبل هستی من فکر یه وجه مشترکی بین ما پیدا شد این اصلا تو کارو خیلی مشخصا من خوش <تص> <تص> <تص> چون... امتیاز بالا درداد وقتی دیدم تو تمبلی اصلا آره نمیتونم واقعا وضعی ها یه پشت کاری دارم یعنی صبح سخت بود برات پشتی به سر کار. صبح همیشه یعنی من بابام خیلی عادت داشت میگم مثلا به تدریج عادت میکنم مثلا پنج سال میذشت من بعد سال هنوز عادت نمی کردم نمیدونم منطقش چیه چطوریه یا مثلا دارم میگم آدمی تا تا زمانی که خورشید تو آسمونه من مغزم نمیتونم مسائل منطقی رو حل بکنه، فیک بکنه. وقتی تو شرکتم که بودی ساعت 5 که 5 بعد از ظهر میشد من تازه موتورم شروع شده کار دمازم. کرده آره. یا مثلا داریم می کار می‌کنیم، مگه کمیته‌ای که اون انجام میدن رو ببینید، ساعت 2 نصف شب یک نصف بهترین کدهای من ساعت مثلا 12 شب تا بعد با خاطر همینم میرم شرکت یه جوری نیستش که این فضا رو برام مهیا بکنه. یکی دیگه از درلنداشم شاید این بود. و اینکه اون آزادی عمل دیگه. <تصفيق> اون آزادی عمل <تصفيق> میگه هر حرف خوبی زد یه کاری گفت انجام بده من خوب انجام ندادم بعد حرف خوبی زد گفت نمیکن چون درد کشیده این موضوع نیستی نمیتونی درک بکنی که من چرا دارم این حرف رو میزنم و بهش گفتم آره راست میگی یعنی میگنی واقعا دا راستیم من درد کشش نیستم و انجامش نمیدم اما الان این کاری که دارم انجام میدم اصلا کار خودمونو رو اما شاید کارونا رو میگیم راستش میگیم اما حالا تمام تلاشم میکنم حداقل درقل روز قبل نشونی میکنم, میکنم شما این روز قبل شروع میکنم مصمالی کردن در دیوان اما تا قبل روز قبلش دارم سعی میکنم کارو رو درست پیش ببرم برای همین که اینطوریه یعنی شاید اون حسی که حس من دوست دارم احساس کنم این چیزی که هست برای منم هست اون حسو شاید خیلی از کار شرکتی به یه نفر مثل من نمیدن و از اون طرف من دوست دارم خلاقیت به خرج بدم دوست دارم یه راه جدیدی رو برم بازم اینا مسائل نیستش که خیلی پذیرفته باشه بخصوص توی های سنتی شرکتی که وجود داره یه نفر مثل من میگه چرا داری دست و پا میزنی چرا داری بول میخوری می‌خوری بشین کارو تا انجام بده دیگه برای همین اون ساختارو جواب نداد و تصمیم گرفتم کلا بذارم کنار من حوزه نویسی رو بذارم که کن... خاطر همین اومده بودی سراغ تولید محتوا دقیقاً دقیقاً چون من خود کتاب خوندم دوست داشتم زبونم قوی بود گفتم بذاریم مثلا یه مقدار یه بعد دیگه, دیگه رو فرض آره بعد حالا اصلا قبل از شما یه استارتاپ دیگه اون شرط کار ریموتو به من میداد اما دیدم نمیخوام درگیر همچین کار جدی خشک دوست ندارم اونم خیلی آینده داره مسلماً اون استارتاپ موفق میشه تو کار هم هست یعنی میترکونه به نظر من اما این الان خیلی برام ارزشه که من میدونم اگه اینو گذاشتم کنار و حسرتش رو نمیخوام یعنی هر چقدر این کاری که ما داریم انجام میدیم در نهایت به نتیجه نرسه من فردا میدونم اینطوری نیست که بگم آخ میرفتم با اون و خیلی برام خوب اینم یه استارتاپه تازه این ریسک هم داره این خیلی برای جذاب فرنشینم باهات صحبت کردم من این بوجه یه مقدار حساسم اوکی. این خیلی امیدوار بودم اصلا ببینیم یه چنم یهو میشه استارت داون مثلا را بنداز میدونی چون استارت ها ما روز اول به یه واژگان مشترکی به نظر رسیدیم ابوزو شد... <تصحیح> <تصحیح> شما به نظر از بزرگ شدنش یه مقدار اصلا دوست دارید یه کاری که میکنی یهو خیلی بزرگ بشه نه واقعا واقعا من دوست دارم این مسئله باشه دارم هندش میکنم چند نفر دیگه از این استفاده بکنم یه پولی به هم برسه با خب مگه توی ستارتاپ بزرگ شدن هم؟ این حتما یکی از پارامتراش اینه که آماده باشه برای بزرگ شدن و اسکیلینگ و اینجا شیزن آره من نمیگم اتفاق خوبیه بعد منطقه اونطوری نیستش که من انگیزم این باشه من صرفا کاری که دوست دارم انجام میدم در کنار شما و اینکه یه مسئله یه بابای راحت تو برای حل, حل اون مسئله کار می‌کنی نه برای بزرگ شدن برای اسکیپ رسیدن دقیقاً این خیلی بعد کنم شما باید همچین دیدی بودید همچین دیدی رو نسبت نسبتاً دارید که بعد روز اول اومدیم ما این توی نبودیش که من فاوندر میشم تو کوفاندر میشی من سی او میشم تو سی اف او بشو یکم سی او میشی یعنی خود یه کاری رو انجام میدیم برقرار خیلی هم... مشکل تایتیل نداشتیم آ اینم یه مسئله خیلی بزرگی که ما بوروکراسی رو خیلی اینطوری چیزا رو نداشتیم من رفته بودم اونجا روز اول سه تا NDA نان دی اسلوجر اگریمنت تو چه میدونم مثلا فلانو بجونه بابام به کسی نمیگم و بعد اینو امضا کنم من این اینقدرم نمیتونم اصلا ارتباط با قرار بکنم و خلاص همه اینا میخواستم بذاریم کنار ربلگ شما اینو دیدم مطلب فرستادم و خب حالا همه این حرفا رو ما زدیم توی اون جلسه اولی که توی کافی شاپ با هم قرار گذاشتیم شب تو خوش می توی چیزه؟ توی کل پذیهفیشاافت خب چقدر تو خوشمین بودی که این مثلا این همین جوری که به نظر میرسه اتفاق بیفته یه ئله هست اینه که... من قبل یعنی چند سال بودش به بلاگ شما رو دنبال میکردم بعد یه تفکر که من به شخصه دارم چه شده بود که روی بلاگ من اومد یکی از استادمون برام فرستاد یه کتابی بهتون شما اسم کتاب امکان یا سی کار که به جای رفتن به دانشگاه می‌تونه انجام داد این تایتلش خیلی با رویات من سازگار بود آره چون دانشگاه من دانشگاه کلاً بسیار شاید 10 تا باهدش به درد بخور بود برام برای اینکه یه نفر مثل من تو محیط دانشگاه خیلی به مشکل می‌خوره نه، دارم. من از من دنبال استاد دویدن چه میدونم خیلی... تو تا همین چند وقت پیشم دانشجو دانش چون بودی دیگر تو فوق لیسانس آره منطق فوق لیسانس من تو خیلی جوانتر از من این دید گوش <تصفح> میدن و حد بزن آره آره اه... آره من کتابشون شونه که از استادامون برام فرستاد که اون استادامونم دمشگه هم دمشکن. از این اصلا استادایت اه... که فوقا دستا هم بود این استادت. با اینکه من همیشه بهش گفتم دکتر، همیشه هم من اسلافی کردم. آره این کتاب این کتبتون رو جالب بود برام. دیدم اون دیدگاه خیلی نزدیکه. آره تو فرستادی برای برای یه لیست خاصی داشت این استادمون برام لیست سرسال می‌کرد. چون انحراف ژنتیکو احتمالاً ایشو می‌دونه. آره دقیقا فقط یعنی حد دیگه صحبت میکردن، همیشه سعی چون که گوسفند ها حرکت میکنه مثلا یکی میره اون و همه پشت سرش میدازن بیرن اون بره. اما بوز همیشه مثلا نگاه میکنه میره چون من بالای تپه میره اصلا میکنش. به شکل تکنیکی هم که میدونی گوسفند گریزره گریز میکنه میچره سرش همیشه پایینه میچره خوب. بوز به, اصلاً به شکل تکنیکی براوزره براوز میکنه چه چاله؟ میچرخه دنبال غذا و اسکن زیر. سرش و زیر رو که هر چی هست جو بخوره به جلو چه به دور و برش براوز میکنه آه. خب در حال خود خدا خدا این بوزانسیل براوزینگ رو استاد توی تو دیدم آره بنظر آره آره این مثلا اتفاقا هنوزم باش در تماسیم خیلی تاکیدات تو کودک درونت در خیلی داره دست پا میزنم <laughs> در تقللص حالا این که تو برام فرستادن از همون زمانی شروع کردم به شما رو دنبال کردن چون میدونی یه گه... دیده جالبه به نظر من داشته یه دیده واقع بینانه به زندگی اینجا دو دیگه فرصت داری از من تعریف کنید از رسته نه دارم میگم ما تا قبل اون دانشگه یه محیط خیلی مصنوعیه یه محیط خیلی مصنوعیه اون بازخوردی که میگیری شاید واقعی نباشه نمیدونم یه سر پارامترهای درگیری که من بلد نبودم کارها خیلی خوب اما دی وبلاگ شما یه دیدگاه واقع بینانه به زندگی نشوند که عللا بر این که می زندگی خود چیزهای خوب داره چیزای بد داره خیلی اصلا امری به این بدیهی به این سادگی رو خیلی در نظر نمی که یه سری چیزای بد هست <تصفح> و یه سری چیز خوب هست کلن خوب خوبه کلا بد نیستش یه تعادلی بودش یه نگاه جالبی بود اینجوری مثلا جذبم کرد و دیگه وبلاگ شما رو دنبال می‌کردم تا مدتها و میگم تو این جالب چند سال الان من دارم دنبال هتفاق خیلی دنباله شما کار کوچینگم هم انجام میدید میخواستم به اینجا برسم که چطوری شد اون روز اول یه فکر میکردم این کار میگیره یا نه حقیقتش برای مهم نبود اه. چون حتی من خودم چیزی که دنبالشم اینه که تا سی سالگی من خیلی برای مهم چی کار میکنم به نظر نباید مهم باشه مهم اینه که با کی دارم این کار رو انجام میدم. اون سه سالی که مثلا تو شرکت بودم من در اصلی که بونده بودم بالا سرم بود یه آدم بالا سرم بود که واقعا دیده کامپیوتری جالبی داشت یعنی واقعا یک مهندس کامپیوتر واقعی بود میگن یه پروستهی همینه که توی مارشال آرت هنرهای رزم میگن بهشون شوهری شو یعنی نگاه،, نگاه کن بعد میگن تکرار بکن تقلید بکن بعد جذب بکن بعد اینوویتن اینو بده. این که آدم بتونی یه نفر با جلوش باشه که ببینه کاراشون، که چطوری فکر میکنه چطوری کار رو انجام میده به نظر من تا سی سالگی آدم، یه همچین کاری رو انجام میده بهتر از اینه که حالا آیا این پروژه موفق میشه یا نه؟ من نمیدونم این آینده داره یا نه. من با همین بیشتر هم که با شما بتونم همکاری بکنم برام جذابیت داشتش. چون جالبه که در نهایت ظهور فیزیکی یه آدم با اون تفکرات رو به بلاگش بتونم نزدیک ببینی. و اینطوری شد که کارمون را افتاد دیگه و همون دوباره افتادم تو چاله مهندس نرم افسار و کود زدن و قشیمون کنیستی نه نه اتفاقا دارم لذت میبرم یعنی حالا درسته بادمان زیاد هم همطور که شما هم میبینی آه. اما دارم کارو میبینم لذت میبرم و خیلی هم خوب یاد میگیرم میدون چون برام مهمه خیلی اوقات به مشکلی میخوردم بعد این مشکلا حل میکردم می‌رفت اما الان این مشکل چون واقعا واقعا احساس بکنم. این مشکل اگه حلش کنم یه مشکل از خودم حل میشه برای همین اصلا پروسه یادگیری من احساس میکنم خیلی بهره وریش بالاتره نسبت به خود پرتاک حالا اگه پرتاک هم بگیم چیکار میکنه <متصف> اصلا دوست دارم خودت برداشتت نسبت به کاری که پرتاک قراره بکنه و مسئلهای رو که از کسی حل بکنه اول چی فکر میکردی؟ آیا این فکر الان تکامل پیدا کرده هست نسبت به امه. به درد بخور بودنش تغییر کرده یا نه یه چیزی که به نظرم با شما دوستان خوبا همکاری بکنم این دیده اِوولوشنری که هر دامون دارین امه. اون روز اول اصلا شما این پارتو که معرفی کردین خیلی فرق داشت با چیزی که الان هستش و خب این پروسه خیلی پروسه لذت بخش بود دیگه البته برای اینکه من از این کلاپوریشن که داشتم خیلی لذت می‌بردم چون می‌دونید من لزومند به هیچ عنوان نمیگم حرفایی که میزنم دوست دارم پذیرفته بشه اما حرفا دوست دارم شنیده بشه این مثلا این ب... محیط خیلی خوب بینما به بجنومان دارد که هر دو طرف حرفا رو میزنم حرفا شنیده میشه و به نتیجه میرست این برامه خیلی پروسی لذت بخش بودش و خود پرتاک من والا بیشتر از این کنشکابم که ارتا شما گفته تو صدای سلامت کار میکردین این که یک سالم درگیرش بودی این الان این ایدهش کجا کجاست تو کلتون اول؟ شاید فکر از اونجا شروع بکنی ایده ببین خب 10 ساله که تقریبا بیشتر از 10 ساله که ما مشاوره تلفنی داریم که روی بستر تلفنی مشاوره میدیم. و این همیشه محدود به تلفن بوده. اما خب تو این ساله اخیر که پیشرفت تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی موبایل و اپلیکیشن های موبایل رو در نظر بگیریم خیلی داره تغییر پیدا میکنه. اصلا نگرش و نوع استفاده مردم از تلفن داره تغییر پیدا کنه و ما احساس نیاز خیلی شدیدی همیشه میکردیم که با این تغییرات خودمون آپدیت بکنیم و آداپت بکنیم. تلگرام که اومد خب بعد از حالا چندین اپلیکیشن چت روی تلفون های همراه خیلی به سرعت خیلی بیشتری گیر شد. حالا من نه دلایلشو میدونم و نه مهمه تو این بحث. این ایده رو من داشتم که اگر بشه یک کاربری با تلگرام و حالا تکست و سایر رسانه هایی که تلگرام در اختیار کاربر میده مثل عکس و وایس و اینا بتونه کمیونیکیت بکنه با مشاور خودش این خیلی میتونه ارزشمند باشه به خاطر اینکه همه دسترسی دارن همه خیلی آشنا هستن باهاش عادت دارن باهاش این بود که ما شروع کردیم به یه مقدار تحقیق کردم با این و بعد صحبت کردن با بعضی از کسایی که من میشناختم و فکر میکردم توی دبلوب کردن این میتونم به من کامک کنن متاسفانه من با وجود که خودم مهندسی کامپیوتر خوندم همیشه از اون زمانی که دانشجو بودم گریز خیلی زیادی داشتم نسبت به کارهای فنی به خصوص برنامه نویستی به خاطر همین من هیچ وقت که برنامه نویست نشدم ولی اگر ایده ی ای چیزی داشتم می میبایست از طریق یک کسی دیگه ای انجام میشد خیلی جالبه ها این که شما شریف هم خوندیم درست؟ من شریف خوندم خیلی جالبه که نه آخه میدینی من این حرف خیلی جالبی میزنی چون نمیگم به هرکس تو هر زمین تلاش بکنیم میتونه به نتیجه برسته منتها من خیلی به افراد میگم که شاید هر کسی اون چیز که برای برنامه نویسی لازمه رو نتونه چون یک اعصاب آهنین میخواد کار واقعا پیچیده یه بعضی میبینم واقعا یه میکنم نه من واقعا بعد از دو سه ماه تقلا که تقلای خیلی جان بود توی شرکتی کار میکردم اونجا برنامه نویسی میکردم واقعا به نتیجه رسیدم که اگه من یه ماه دیگه این کار رو انجام بدم احتمالا یا باید خودکشی کنم یا برم تیمارستان <تصفيق> خیلی, خیلی سنگی مید برام بخاطر اینکه من اصلا نمیتونم به جزیات فکر بکنم و تمرکز بکنم من, من فقط با کلیات اه، اه، برمیرم خیلی اصلا جزیات دیگونه میکنه من دیگه برمومه هم خب تا حدود زیادی همش جوزیات جزیات در در حدی کارکتر در حدی خلاصه بزن اینجا به بیانند دارم دیشب سه ساعت خدا شاهده من درگی بودم یه اسلش بود یه اسلش سه ساعت پیر شدم به قرآن ده. آره اینجور خیلی خلاصه نه برای مهمه به خصوص کسایی که در این بارد این رشته نشد الان طرف مثلا میگه پول تو اندرویده یا چنون هم پول تو فلان چیزه خودت بخوام بخیلان پول در بیاری باید بیاری برای نویسی ب و سخت پروسست کار سختیه واقع خیلی در شد... سخت سخته اگر که مطابق اون سیستمتو نباشه میشه تغییر نشدنی نیست ولی خیلی هزینه گذافی داره اگر شما مثلا یک کسی مثل من بخواد یه برنامه نیست خوی بشه خیلی براش گرمتا هم میشه مهم. به خصوص از لحاظه اصلابی فکر میکنه درست. و احتمالش هم خیلی کمه که و احت... احتمال که وسط کاری جایی ببورم خیلی زیاده. این شوخی دیگه من تقریبا به خودم روشن کردم و از برنامه‌نویسی اومدم کنار ولی خب گهگوداری بوده که هنوز هم هست برنامه‌نویسی خیلی کوچیکو دوست دارم مثلا اینکه در حد 20 خط 30 خط کد باشه اسکریپت بنویسم ولی برز... لوله کشی رو شما می‌تونه خیلی خوب انجام بدین که مثلا شما سرور مرو نرم شما میل سرور رو راه انداختین مثلا اینجور کارو آره من چون چند سالی هم یونیکس بودم چون خیلی دیگه کارهای ریز داشت کارای کلان‌تر و کلی‌تر توش می می‌کردم اونجاها دیگه برنامه‌نویسیای اسکریپتی و اینا یاد گرفتم و هنوزم می‌کنم مثلا بخوام یه کوئری بنویسم در این ادمینکسام ولی بیشتر از 20 خط 30 خط که بشه مثلا بخوام تو 2000 خط بالا پایین برم این،, این دیگه در طب واسه خیلی خوب این یه رادر روح رو پیدا بکنید یعنی یه یونیکس ادین خیلی جای خوبه بوده برای یه نفری مثل شما یه حداقل هایی رو داشته اونم، که در... اونم خیلی اتفاقی شد یعنی باز اونم نبود که مثلا بشینم برنامه ریزی بکنم یا فکر بکنم که من این جور هستم یه همچین شغلی به دردم میخوره اونم اتفاق افتاد حالا بحثش دیگه خیلی طولانی یعنی به نظر تا الان درون ماهی بش از تو هر که چقدر اتفاقات مهم نه خیلی خیلی اینو اصلا در نظر نمیگیرن آدم ها من الان به جد میگم من هیچ اتفاق مهمی تو زندگی نیفتاده که آگاهانه من خودم مثلا برنامه ریزی کرده باشم امکان نداره امکان نداره خود صدای سلامت که الان باعث شد که این ایده متولد بشه یکی از میتونم بگم درایورهاش یکی از چیزایی که باعث آفرینش شده سلامتش در کنار حالا همکاری با برادرم و یه شریک دیگه و زحمتی که تمام کسایی که تو این راه کشیدن یه دلیل خیلی آسمانیش افسردگی شهید من بود که من یه افسوردگی شدید منو کشون به مطب روانپزشک و اونجا به ایده مشاوره تلفنی رسیدم و بعد این مسیر ادامه یعنی اگر من اون روز انقدر دستور نبودم ولی الان دیگه پرتاک ما داشتیم درجب یه ساندویچی صحبت می‌کردیم شاید مثلا من تو اینجا نبودم تو یه جای دیگه ای بودی من یه ای بودم که احتمال زیادم همینطور همونطور میگون بنابراین همه اتفاقی که الان اومدیم امروز این صحبت می‌کنیم درست درست جالبه حالا همینجوری که گفتی یک دیگه از دردی که به نظر من چون من حالا بهش شاید گفتش این استعدادو دارم که یه چیزی که واقعا کار بردی باشه و میتونم تشخیص بدم حالا نمیدونم خب میتونم بفهمم یه ایده چقد چرته نمیتونم آفاید. پیاده سازی بکنم اما این و فکر کنم این ابسورد بودن شما و صدای سلامت کار کردن و اینجور مسائل باعث شده یه همچش ایده بیرون بیاد که من میتونم باش ارتباط برقرار بکنم یعنی این خیلی مهمه که الان این ایده ای که داریم روش کار میکنیم به نظر من واقعا ایده عملیاتی رو به درد بخوریه امه. این پیشینه ای که شما داشت یعنی تو نبوده ی روز یه شب مثلا خواب بلند شید بعد به این نتیجه برسید که مثلا رو آقا من اینو خیلی تاکید مثلا یه بخچه رو شنیدید؟ بله <تصفح> نور می‌بره در, در خونه ها آ واقعا این دغدغه مشکل جامعه ما اینه باره. من ب... من نمیتونم با همچین چیزی ارتباط برقرار یعنی تو جامعه ای که ما داریم تو مشکلاتی که ما داریم بوی پول میده برای من ایده مثل بغچه اما ایده مثل پرتاک برای من بوی پول نمیده منم که اره امیدوارم بشه توش پول درآورد. امیدوارم که بوی پولم بده. <تصفيق> امیدوارم بوی پولم تا جایی که میشه بده. اما برام مهمه که اون حس انسانی پشتشه که یعنی یک انسان یه نیازی داشته، یه مسئله‌ای رو دیده و حالا میخواد حلش بکنه. آره واقعاً صرفاً اینکه مثلا میگی... میگن توی اندروید خیلی پول هست اه... این قبل از اینکه به پول خیلی به پولش فکر کنه مثلا همون موقع خیلی بیشتر از امروز به به اینکه پتانسیل پول داره و ازش میشه پول در خیلی بیشتر از امروز ده سال پیش خیلی خیلی بیشتر فکر میکردم حتی اون موقع مثلا یک کاری میکردم که دیگران خوشبختانه ترک کردم شیت برای خودم میکشیدم که اگر مثلا تعداد مشتری ها به اینقدر برسه ما مثلا هر کدومشون رو اینقدر ازشون پول بگیریم چقدر میشه و چقدر از این تبخم ذهنی پول در بردن روی ا که الان خوشبختان حال این خیلی کمتر شده یا اصلا نیست. ولی قبل از اینکه این باشه این بود که در خودم نیازشو رو میدیدم یعنی به عنوانی آدم حسی کردم که و مطمئن بودم که یه چند نفری دیگه هم قطعا مثل من هستن که نیاز داشته باشن تلفنی با این نفر صحبت بکنن دقیقه. و حالا این داشت این صحبت می کردیم رسید به اینکه الان فکر می خب خیلی هستن که دوستدارن به جای تلفن از طریق تلگرامشون با یه مشاور یا با یه پزشک ارتباط داشته باشن ای که دارن رو به حال بپردازن بهش من نمیگم حل بکنن ادرسش بکنن شاید یه نفر بخواد در مورد تربیت بچهش یه چهار تا سوال جواب بکنه یه اطلاعاتی بده اطلاعاتی بگیره در مورد بیماری که داره صحبت بکنه ما حتی یه ورژن ابتدایی از این رو توی ماه گذشته به نام تلکلینیک تست کردیم که چند ماهی هم کار کرد هنوز هم به نوعی داره کار میکنه که اونم به نوعی همین یه داون بود teleclinic.ir که اونو شروع کردیم منتها یه مقدار مسیر تغییر کرد اتفاقهایی افتاد به قول تو که اتفاق بود و رو باعث شد که اون مطلب پست بشه روی ویبلاگ من سرکلهی تو پیدا بشه ما با هم دیگه صحبت بکنیم تو ابراز علاقه بکنی و بعدم کار شروع کردیم و الان چند وقت گذشته از اون روز الان من فکر کنم دو سه ماه گذشته از سه ماهی فکر سه ماه فکر کنم از همون ملاقات تو کافی شاپ توی کافی شاپ سه ماه گذشته که میشه که بعد از این سه ماه که زمان به نظر من خیلی قابل قبولیه الان دوریم برژنگیه کم اونو میدیم بیرون دیگر میکرم به بیننده بگیم یه ماهش هم من درگیر فوق دیستان سم بیننده ها شنونده نکنی چیزی میخوای به ذریبهشون نشونه من این زیاد ها رو زیاد میگرم دهن شبه میپره اما آره این چیزی که داریم میگین اتفاق تو این پروسه همی که پروسه خیلی ارگانیک بود خیلی لذت بخشه که من توی نمینام این طور نبودش که یک چارتی تایی سازمان ترک بشه یه ورودی داشته باشه این ورودی از یه سری جهارت بشه برد. از همون اولش ساختار ارگانیکی که داشته هم همون ایده هم کل مسائلت هل و اون یه حالت ارگانیکی داشت و اینم به نظر من خیلی انسانی تره خیلی خیلی نمیدونم شاید توقع من زیاده من دوستم تو دو جمعه کارم به عنوان یک انسان کار بکنم با یک انسان رفتار بکنم خ دوستم دارم تو چارچویگ ماشینی که این ساعت تا این ساعت روی این مورد فرق انسان و ماشین چیه الان دیگه خیلی این تفاوت ها بلوری شده یه جورایی یعنی الان خیلی ماشینی زندگی میکنن و عادت میکنه یعنی اصلا طرف دو ساعت ترافیک از خونه تا محل کار عادت میکنه و جزء زندگیش میشه حالا اگه اون چیزی که تو میگی من دوست دارم انسانی باشه بخواد اون بود از انسان بودن بیا توی کار چه ویژگی های اون کار داشته باشه که این بعد انسانی بودن تو محصول نهایی یا این چیز تو،, تو،, تو کل فرایند تو همه چیش مثلا شاید یه بعد اونه که فقط پوله نباشه یه معنایی هم فراتر از اون پول یه نیازی هم فراتر از اون پول هست درسته به نظر خود من چیزی که خیلی این رو متمایزش میکنه از ماشین همون کامیلیکیشنه که میتونیم میتونی بگیم محوریت پرتاک هم هست. <تصفح> پرتاک شعارش چیه؟ ارتباط سودمند. ارتباط سودمند. پرتاک میخواد آدم ها رو نه آدم با ماشین رو. <تصفح> میخواد دو دوتا آدم یه ارتباط برقرار بکنه. اینجوریه ببینم به خاطر تجربه‌ی شما که روز اول رو به من مطرح کردی من داشتم به چیز فکر می‌کردم چون روز اول مویدمون فقط مسئله پزشکی بود من داشتم به این ماشینی فکر میکردم که اون پشت باشه و جواب بده آره جباله. یعنی من, من با هر کی دیگه صحبت کردم در مورد این پلتفرم امین پیشنهاد داده و من رد کردم این یعنی تو ناخودآگاه من چقدر حق شده این فرپرسی ماشینی آره. بودن آره. اما واقعا الان تو دو به خصوص در ما چیزی که کمتر از همه آد... این اون چیزی که من دنبالشم دیگه یک نفر باشه بتونم باهاش به عنوان یک انسان صحبت بکنم درک بکنه مشکلات منو بشنوه آه. و بازخورد انسانی بده من نمیخوام بدونم که آره مثلا قدم قدم چقدر وزنم چقدر از چه مشکلی دارم یا ندارم این خب دوستم یه نفر باشه بتونم بازخورده انسانی از نظر من حالا تو هم نظر تو بگارب. از نظر من اینه که وقتی من داستانم و برای تو میگم تو هم داستان خودتو حالا کمی تحت تاثیر این داستان یا اصلا به نوعی که مرتبط باشه برای من بازگو بکنی خیلی داستان مهوره به خاطر اینکه همه ما یه،, یه سری داستانها رو پشت سر گذاشتیم که شامل بیماری سابقه فرهنگ فرهنگی آموزشی خانوادمون مسائل مالیمون یه چل سال من داستان دارم دیگه ده. وقتی تو با،, با من در مورد کارت صحبت میکنی انگار که یه چیزی رو میریزی توی دیگه چهل ساله و با اون میپزه با اون میجوشه و چیزی که من به تو میگم در جواب به تو یا در ادامه گفتگو حاصل ترکیب کلی فعل و شیمیایی که اون دیگه اتفاق میافته. ولی یک کامپیوتر نمیتونه این کار بکنه نه یه کامپیوتر نمی‌تونه این کارو انجام بده انسانی از نظر من یعنی این. و دلیلی هم که ما خیلی اصرار داریم که اگر یه پزشک یا یه مشاور روانشناس یا یه معلم یا یه وکیل یا چه میدونم حتی یه منشیه یه شرکت یه کارمند پس از فروش یه شرکت از پرتاک استفاده کنه به این شکلی که ما تر کردیم به خاطر اینه که اون مشتری مطمئنه که یه آدم داره جواب اینو میده یه داستانی پشتشه یه یه حسی یه احساسی پشتشه و ما توی این فراینده سماه اگر تو حتما دقت کردی اه اه همیشه اینو لحاظ کردی درست میگم درسته یعنی بازخورده دو طرفه‌ای که داشتیم دیگه این دقیقا اتفاقی که افتاده خیلی لذت بخش میکنه کارو دقیقا یعنی اینم برام جالبه که تو این پروسه یه جوری به شناخت متقابلی ما تونستیم برسیم یعنی صرفاً اینطوری نبوده که آقا این کار هسته این برای من خیلی واقعا این یه نفر دیگه این شرط معیار میشه که با یه نفر دیگه هم میتونستم کار بکنم با یه دستمزد خیلی بالاتر مسلما <تصفيق> با یه کار چه میدونم شاید گنده‌تر با تیم بهتر با خیلی مسئله دیگه اما اون حس انسانی که الان من تو این کار دارم آقا من با شما مطرح میکنم شما یه بازخوردی میدین من یه مقدار شما رو میرسستم شما نمی شستی در همین حین یه اتفاقاتی هم داره میفته که هولوحوش کار هولوحوش پرتاکه و اینا من این, این کارو لذت بخش میکنه شاید بشه گفت یه جور خودش این ایدئولوژی رو داخل خودش پرورش شده که دو نفرند یه سری افرادن دارن سعی میکنن با... تو این پروسه همدیگر بهتر بشناسند به همدیگه کمک بکنن یک انسان به یک انسان دیگه <تصفح> من اینو خیلی میپسندم و برام... بخصوی که محتواز ما تو جامعه ما محتوا خیلی برام کم اهمیت شده. <تصفح> اینکه ما داریم یه بستر فراهم می‌کنیم که حالا این محتوا ارزش پیدا بکنه. این محتوا من میرم سراغ یه نفر به‌خاطر محتوایی که در اختیار من میذاره این به نظر من خیلی با ارزشه. تو شرایطی که ما داریم که فقر محتوایی داریم. فقر محتوایی. آره. تو به من میگفتی که حس و حالتم تو این دو سه ماه تغییر کرده، تری چشمش نزده آره آره خب مسلمم خیلی چیز عوض شد دیگه اولا یه تجربه خیلی جالبه بودش من قبلش داشتم با شما صحبت میکنم که نمت کنم یا نه خیلی هم شخصیه به عنوان مثال این که آقای قلب ما به نظر لگت خورش خیلی خوبه بعد قبل ماجر دختری بود ما هم رفتیم و جوان خام بی دل دادیم گیر کردیم و دیگه آقا سوختیم هر کاری هم کردیم درست نشد کتاب به مسافرت برو چه میدونم با دوستا بگرد لعب و همه کار کردیم نشد تا زمانی که من درگیر این کار شدم و خب یعنی اون زمانی که تو کارنامه رو برای من فرستادی ماجرا تموم شده بود نه نه بابا نه نه ببین تموم شده آخه پیش من یه طرفه درگیر میشم بعد طرف من حسابی درگیر میتنم آره من خودم حسابی هنوز درگیر بودم بعدش حالم شده بخاصن سری تاثیرات داشت تصمیم گیری که کرده بودم دیگه یعنی ازش ممنونم این من با اینکه من بعد ازش ممنون باشم اگه اگه کار به پول برسه تو رو کرد و خلاصه که آره اینکه گیر کرده بودم ذهن درگیر بود هر کاری همی کردم آزاد نمیشد تا اینکه من درگیر این موضوع شدم درگیر پرتاک شدم و خب برای من اصلا پرتاک چ... یکی بزرگی ترین جزایبتش اومد که تو همین سه ماه حداقل به مجموعه دانش من راجع خودم اگه مثلا تا الان ده تا چیز میدونستم الان پنج تا چیز دیگه هم اضافه شده که خیلی زیاده. من درگیر این کار که شدم ناگهان یعنی آزاد شدم یعنی از همه موارد دیگهی که بود تو زندگیم خیلی راحت آزاد شدم و نمیدونم چه اتفاقی میفته تو انسان نمیدونم چطوری ماجرا اما برای من اینو داشت که واقعا آدم اگه یه کاری انجام ده که ازش لذت ببره یعنی حال خدایی نکنم و تو آشنات بمیره پول تو بخورن و هر شکست بشی چونم پاد قدشه همه اینا اگه اون کایه کاری انجام میدی که واقعا ازش لذت ببره بتونه غرقش بشی واقعا داری از این کاری این لذت میریداری اراق میکنه خف ببین نمیدونم اقراقامیز به نظر میرسه خیلی اراقامیز به نظر میرسه و بگم خیلی سخته ها یعنی من پیش وقت هم میرفتن می گفتفتم که آره من برنا می بکنم چون مثلا سه ماه قبل من سایت نمیتونم طراحی ب کنم یعنی تا حالا من سایت طراحی نکرده بودم اخه شمال خیلی راه می میگی آره آره سایت لازم داره یه بدیهی جلوش میدی موضوع بعد منم نترو دارم کار که میکنم آره هیچ کاری نمیادات نمی میکنم منم تو رو در نمی منم تو رو درویس خراب نه خیلی کار من مثلا ایده ها ایده زیاد داشتم من یک دو تام بدون نشون دارم مثلا 5 سال روی ایده ای دارم کار میکنم یه فرم HTML درآوردم بچه‌ها میای اینجا یه حرفی میزنی بعد بدیهی هم جلوش میدی بعد من تو رو در درویس میگم آره باشه برو واسایت در بعد میرم خونی میزنم تو سر خودم که مسلما این چند وقته خیلی چالش زیاد بوده چون من از اون طرف سربازی هم دارم اینقدر کارهای سربازی اینا رو بعد انجام بدم پروژه مروژه پروژه درگیر از اون طرف فوق لیسانس هم, هم بودم این مدتی سر هم افتاد خیلی من واقعا من اولین بار شب‌ها خواب پریدم این چند وقته یعنی تو این مدت و خواب پریدم. درگیر کار بودم و اینجا مثلا فکرم هم تو اما به ازای این چالش‌ها الان من وقتی محصول نهایی رو می‌بینم این محصول خیلی خیلی به اون چیزی که من هستم نزدیکه یعنی الان آن چیز نهایی رو که دارم می‌بینن کم کم داره ازش بیرون میاد حالا به تفکر خودم منزل و از اونجا که تفکر شما بیجور نزد... نزدیک این تفکرات به هم امیدوارم اگه چیز تلفیقی باشه حالا همه این سختی ها بوده این مسئول به اون چیزی که تو هستی بجز اون قسمت تنبلیش <تصفيق> <تصفيق> تو چی هستی که این رو نزدیک با خود ب... اولاً که سعی نمیکنه حرف گنده ای بزنه یعنی من خوشم میاد خیلی ساده است، خیلی جم و خیلی کوچوله، سعی نمیکنه استالله هم گنده گویی کنه بعد گنده گوزی نه فکر خیلی سعی کردم آره خلاص همه که گفتید و آره این کارا رو نمیکنه در این حال بچه خیلی من کتاب متاب زیاد میخوندم محتوا برام ارزش داره از اون طرف تعامل انسانی هم یه مقداری شاید نمیگم در... اما تو حالت رسمی یه مقدار آزار آزاردهنده باشه <تصفيق> الان این با داره بستر یه بستری فراهم میکنه که خب من میتونم فرار بکنم از این موضوع میتونم دیگه لازم نباشه با دکتر راه راحت رو را می‌فرست عکس میفرستم براش چه می‌دونن اگه موضوعی لازم باشه میفرستم تو هم بدتر از من تا حدودی زیادی درونگرا و رکلوز هست دیگه <تصفح> من یکی از گفت تو درونگراتر از اون درونگرایی هستی که به نظر میرسه آره برای همین این ترجمه یه <تصفح> سری از کامونکیشن. ها تو از راه دور انجام بدی <تصفح> خیلی خیلی داره زیاد خیلی زیاد بعداً اینکه جمع جوره بعد میگم تو این پروسه انتخاب من داشتم تونستم مثلا چون از تکنولوژی استفاده کنم که خودم دوست دارم من مثلا طرفدار اوپن سورس اینجور مسائل بودم من حالا دیگه خیلی رادیکال ترش میشه فری سوفتور که یا همه چی آزاد باشه بعد ما روز اول رفتیم شرکت سر کار بمانه که زبانش سی شارپ ماکروسافتی بود مثلا ما تو دوران دانشگاه فوش میدادیم اینا بعد ما گفتن اولین پروژه که باید انجام بدی کد اوبفوسکیتوره کد کیتور کارش که کد رو و میکنه که هیچ کس دیگه این نتونه یعنی دقیقاً در تناقض با تمام آرمان ها با شعار ها با چیزهایی که من تو زندگی می داشتم میگفت اما الان مثلا توی این پروسط من این شانس داشتم که از چیزی استفاده کنم که نزدیکتر بودم به تفکرات خودم نیمون اون چینشی باشه که بیشتر برام جذابیت داره و اینکه این open بودن سمت شام خیلی برام چیز دیگه چون میگم گفتم دوستام شنیده باشن اما انتظار ندارم پذیرفته بشن با این حال پذیرش که سمت شما بود باعث شد چه خلاقیتم ببینید اول که مثلا شاید جنته یه کوچیکی بود اما دارم میگم نه مثلا اینکه داره جواب میده ولی نمیدونم کم کم بزرگتر بزرگتر شد بر همین داره میگم شاید شوش خواب پرید چون یو دارم میگم, یا دارم میگم، مثلا اونجا رو اونطوری بکونم و این اونجا اونطوری شده بودش یه درگیر بازی تونستن بشن و شما میگم خوب پاس میدادید. دوست دوستان تو زمین اومدن خب پاس بده. خیلی جون اینطوری نیستش. این باعث شدیم این برنامه من لذت در عین همه سختیایی که داره یعنی من قسم خورده بودم من به سمت یو نرم. چون نه استعدادشو دارم نه حالو حوصله‌شو داشتم. حالا جالبه نرفته بودم تا الان تو همین پروسی که رفتم فهمیدم که خیلی هم بدم نمیاد. مثلا خوشم درگیر جزئیات بشم. چه مسیر قرار گرفتم که آره صرف نظر از این که واقعا بسورد این سرویس یا این کسب و کار توی بازارش چه خواهد بود اصلا تجربه ای این مدل کار برای خود من خیلی استثنایی بود برای اولین بار واقعا باورم نمیشد که ظرف سه ماه ما بتونیم به همچین جایی برسیم و این رو تولید بکنیم به, به مرحله عرضه برسونیمش با این مدل ارگانیک و بازی که گفتی یعنی من دفتر کاری داشتیم که مثلا هر روز صبح بیایم اونجا تا 8 9 ساعت کار کنیم کنار هم دیگه خیلی وقتا ما اصلا 3 4 روز یا حتی یه هفته از هم دیگه خبر نداشتیم درست یعنی واقعا یک هفته تمام میشد که ما حتی متن تلگرام با هم دیگه متقابل نمی کردیم درست. تو داشتی کار خودت رو می‌کردی من داشتم کار خودم می‌کردم و اه... یه... یه اعتماد عجیب غریبی که به خصوص بیشتر من نسبت به تو داشتم که آرش طوری کارش خودش رو می‌کنه دیگه و اون واسهت مثلا بعد از مثلا دو هفته میومدی میگفتی تو سه چهار تا چیزام اینا رو هم اضافه کردم که خیلی سورپرایزینگ بود برای من واقعا فراتر از انتظار من تو یه که اصلا ما راجع بهش صحبت نکرده بودیم یه فیچری هم تازه اضافه می‌کردی به اپلیکیشن مثلا همین امروز که صبح اومدی یه قسمتی رو گفتی بقولی که اصلا تو این ورژنمون نبود ما هفته پیش به نتیجه رسیدیم که اینو بذاریم این ورژن بعدی ولی تو اینو اضافهش کردی این فراینده و تجربه این فرایند برای من خیلی منحصر به فرد استثنائی و خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتم من بیشتر از اون چیزی که بتونم نشون بدم الان هیجان زده و خوشحالم <تصفيق> آره میتونه دهشوک کنم ای کاش شنونده های ما بیننده ما هم بودن <تصفيق> میتونستن بیاقای پوکر پلیس براتون نمس بکنن آره من اصلا نمیوادم آقا 10 تا از اضافه کرده بودم آره الان دیگه میرم میتره کنم بعد علی آقا آره خوبه یه مقدار مثلا کام اون آره اما آره اتفاقا اینه که داره میگه خی... اصلا خبری نمیشود یکی از دلایلش اینه که یه مدام من بودم و هستم جالبه که روی این نقطه هم تونستم تو مدت دست بذاریم یعنی دارم سعی میکنم اینا به بهبود ببخشم یعنی مثلا میرفتم و گیر میکردم یه جاهایی و خب صداشو در نمیآوردم منتها الان دیگه دارم کم کم عادت میکنم که ای آقا مثلا گیر کردم فلان جا یا مثلا اینجا این مشکل هستش این اعتماد و چه چمی... بعد میاد محیط کاری هم یه شرایطی به وجود میاره به خاطر اشتباهات اصلا هیچ چیزی ازت از از از نمیپذیرن یعنی تلاشه به صرف خودش نادیده گرفته میشه اما خب اونم تلاشی بوده دیارم آرام خب اورش ببین تو الان همش به بحث کردی چالش چه... هم داشین دوستانه که مثلا خسته بشی از این, این کار که... یا نخواهید دیگه با من کار بکنی به که خست ام... راست رو <تص> نه اینطوری اما من دارم باقعا چند وقت رو به این مساله خورده بودم یعنی جنس تا تالا این مدل کار انجام نداده بودم هر مثلا کاری کامپایلری انجام داده بودن کاری وب سروری انجام داده بودم کاری یعنی بکند بک ها یعنی بکند روی این بک من سوار می شدن در این حد بکندی بلکه یا من در کار شدم خود منم تجربه ندارم خیلی تجربه فراستیتینگ فراستریشن فراستریتینگ آره یعنی در همینات که ما تو پادکست هم میتونیم هر چقد دلم میخواد کلمه این سفر کنم این هم اینا خیلی به من کیر میده خود دارم یه مثلا من امروز تمامون فارسیم تموم شد دیگه الان میرم خونه فیلم و ویدیو خارجی میبواد نه خارجی به خونه خب یه مقدار دست خودت نیست دیگه مقدار خارجیم حالا خلاصه نه سخت دودنش که میگه من شرایطی ها رفتن بهش اذعان میکردم که عادی من برنامه خوبی نیستم من نمیدونم چیکار خب اون ماهیت کاره او توی تعامله با شخص من جایی بوده که واهم عذیت بشی عذاب ببینید و بخوای بری کنار آخه اولا شما خیلی اذیت نکردید <تص> <تص> <داره> اصلا تعاملی من, من <تص> <داره> این در واقع صفر میدین شما کار پوزیت کنین اون فشار روانی که روی من وارد میکردین چون میگنه فرم مثل من یه همشین کاری رو هیچ وقت شد منطقا همون که بودنتون همون چنگایی چه من میدونم باید دو شما جواب بدن این فشار خیلی علازه روانی خیلی فشار رو بردید یعنی خواهدتون هم نمیدونید من صرف بودن هم بوده میخواهد نباشم دیگه بعد این از این لحاظ اما تو تعامل من نواقعا من لذت بردم این چند وقته و احساس میکنم خیلی بیشتر از اون چیزی که دادم گرفتم جدا در انشالله اتفاق خیلی تو فکر من زودتر جمع بکنه پروژه پندیو رو بنداز <تصفح> <تصفح> آره در کل کل پروسه برا من لذت بخش بودش آره خیلی سخت واقعا خودی. الان تو سایت هم برن نگاه بکنن خونه دلی که اون پایین نوشتیم واقعا خونه دل بوده یعنی من دوتا تا تارمون سفید شدین چند وقت اینقدر این, این فشار کارو اما در کل من راضیم به خصوص که روز اول با هم دیگه زنگ زنم صحبت میکردیم یادم اصلا حرفمو ما مارکسیستی بود چه میدونام اینجور چیزا هم بود من شوهرت رو برقرار میکنید خیلی ناراضی بدم حرفای تو مارکسیستی بود یه نقداد داشتیم صحبت میکنیم راجی چون میخواستم یه بار یه نظام غیر رو من تجربه بکنم تو زنگ بگیم احساس کردم الان بسترش مهیاست و واقعا یک سیستم هر میکنم سیستم چینش افقی ما قرار گرفته بودیم برای خیلی منم خیلی دوست داشتم یه نظام فئودالیستی رو مطرح کنم تو بش برده من ولی روم نشد من حالا اسم شاید روش نشه اسم اما این واقعا نخه نزدیک اون اتفاقی که افت رو چون نشستم یه جا توی اتاق تاریک صبح تا شب هفته یه بار میام گزارشیدم آره اما آره خوبه راضیه و امیدوارم مسئول نوی در نهایت چیزی باشه که بقیه هم ازش لذت ببرن چون میدونید مسئول نوی کجاست پرتاک دات آیار؟ پرتاک دات آیار آر آره و بذار تبریخ بکنیم واسه پرتاک ام... اصلا بذار ب... به درد کیا میخوره از چیزی که شما چیز کردین به نظرم بخ... شما بگین راجبه به درد کیا میشم چون مسلما به درد روانشناس میخوره قضیه روانشناس صدای سلامت اولین مشتریان این خواهند بود یا بهتره دقیق‌تر بگم اولین کاربرانه اصلا می اول اینو بگیم که پروسه چطوریه؟ پروسه استفاده از پارتاک الان چطوریه؟ پروسه اینجوریه که یه کاربر مثل یه روانشناس یه پزشک میاد روی سایت partak.ir ثبت نام میکنه اونجا خیلی راحت میتونه یک سری مسیر ارتباطی بسازه. مسیر ارتباطی ما به چیزی میگیم؟ به یه کانالی میگیم که از یه طرف تلگرام رو وصل میکنه به ایمیل مشتریان اون روانشناس یا اون پزشک از طریق تلگرام براش پیام میفرستن پزشک از طریق ایمیل دریافت میکنه از طریق ایمیل پاسخ میده و مشتریا دوباره از طریق تلگرام اینو دریافت میکنن دلیل این که هر دو طرف تلگرام نیست به خاطر مسائل تکنیکال و محدودیت های تکنیکی تلگرام که حالا شاید یه روز این برطرف شده یعنی روانشناس فرح... این 10 تا بیمار داشته باشه، مدیریت کنه این 10 تا بیمار توی ایمیل خیلی راحت‌تره تا توی تلگرام. خیلی خیلی خیلی خیلی دقیقی. نشدنی نیست ولی به شکل عملی به شکل پرکتیکال واقعا نشده اون چیزی هم که ما داریم حداقل تا من تجربه <تصفح> کردم تو ایمیل خیلی لذت بخش‌تر میتونه باشه این تجربه و دنبال کردن ترد صحبتی اضافه داشتی. که اینکه ایمیل هم به نوعی ابزار کامیونیکیشن مثل تلگرام یعنی ماهیتاً خیلی فرق نمیکنه. یعنی شما اپلیکیشن جیمیل رو روی گوشیتون و اپلیکیشن تلگرام مقایسه بکنید، خیلی تفاوت زیادی نمی‌کنه. بنابراین هر دوی اینا یه تجربه نسبتاً یکسانی رو به کاربر می‌ده. مخصوصاً که ما تونستیم از لحاظ زمانی هم خیلی معالاً مشکل نداری. از زمانی مشکل. زمان. خاصی که انجام اینجا این هستش که ما به اون روانشناس این میدیم که از طریق گفتگو یا کامیونیکیشن یا تعاملی که برقرار میکنه با بیمارش یا با مراجعش پولم در بیاره یعنی به نوعی ما میایم یه کنتور میذاریم سر راه این دوتا مهم. مثلا یه مشاور روانشناس میگه که من میخوام یک ساعت از طریق تلگرام به مشتریم سرویس بدم با هزار تنجاه زارتوان بگیرم ما این امکان کردیم که خیلی راحت مشتری بتونه این 5000 تومان رو بده به اون روانشناس و این دو تا با هم دیگه در اون یک ساعت گفتگو بکنن و بعد یک ساعت هم اتوماتیک این گفتگو خاتمه پیدا بکنه. دقیقا دقیقاً یعنی این فرصت پیدا می‌کنه روانشناس که داخل تلگرام صرفاً شات نمی‌شسه تو خونش یه ساعتی مشخص می‌کنه بیمار می‌خواد پکیج و حالا می‌تونه خیلی راحت دیگه این بحث خلاف تلفن که آنلاینه این آفلاینه یعنی دما که این یه سوالی میکنه یه چیزی میگه پزشکش، مشاورش، وکیلش می‌تونه 10 دقیقه بعد میتونه سه ساعت بعد این جواب اینو بده. نیازی به همزمان روی خط بودن مثل تلفن نداره. به خاطر همین تلفن انگوزه خ... بجز موارد حالا اه اه خاص نمی‌گم بجز موارد که واقعا تلفن نیاز هست مثلا شما نیاز هست که ریل تایم با مادرت صحبت بکنی یا با یه کسی صحبت بکنی بجز اون موارد ترندین که خیلیا دارن به سمت مکالمه‌ها و گفتگاهی آفلاین سرخ پیدا میکننا بگم به سعت میدانی من واقعا این به سرعت عملیاتی هم دیدم می همچ استفاده من اینکه از آشاممون این پزشک پوست رفته بود بعد حالا چه میم یه تا تا دارو ماروبه شده بود این دوست ما یه جوشی زده بود بعد از این جوش عکس میگره تو تلگرام برای دکتره میفرستد که من یه همچین جوشی زدم من چطوری مثلا مشکل چیه؟ چه داری استفاده بکنم فلان بیزار حالا الان. وصفه از واسه پارتاکی پزشکه هم میتونه تعداد زیادی بیمار مدیریت بکنه هم میتونه یه بات داشته باشه به اسم خودش تو تلگرام و همین که میتونه پول در بیاره همین که پول در بیاره یعنی از همه مهمتر این که الان دیگه لازم نیستش تو تلگرام شخصی خودش مثلا بگه عزیزم من بیا تلگرام فلان جا اون بره اونجا برایش رو ای اکسس پوش تو جوشش بفرسته در حالی که در مثلا مادرش صحبت میکنه تو ایمیلشه ایمیل کاریشه بعد همین که میدونه یه نفر که داره از سوال میپرستی می پرداخت کرده خیلی زیبا لذت بخش بله در زمینه پزشکی به شکل خاص خیلی از بیماران پزشک که مجبور نیستن راه دوری رو بیان برن مطب و یعنی به نوعی تلمدیسن محسوب میشه یعنی یه ابزار برای تلمدیسن میتونه محسوب بشه توی خدمات روانشناسی هم همینطور این میتونه ابزار خیلی خوب آموزشی باشه برای معلما این خیلی منوع در هر زمینه‌ای ایده‌شون آمدن واقعا جذبه شدن هر معلمی معلم خصوصی معلم ریاضیات معلم ادبیات میتونه پکیج‌های مختلفی رو, رو روی این تعریف رو کنه و به دانش آموزاش سرویس بده. نمیگم که ما طرح ای هم داریم. یعنی مثلا میگم یه طرح من یه جلسه می‌خرم دیگه که صحبتی داشته باشم اون جلسه که به نتیجه رسید کسی که داره سرویس رو میده میتون جسه تموم بکن مثلا شب امتحانه من این سوالی رو دارم میتونم یه سشن بخرم با استاده با کسی این سال دارم راه حلش چیه چطوریه استاد جواب میده به جواب گرسی به نتیجه رسین سشن تموم میشه حالا اگه یه سوال دیگه, دیگه ای داشتم یه سشن دیگه جلسه دیگه اصلا یعنی به نظر من آره خیلی از خیلی کاربرد آموزشی میتونه داشته باشه یعنی e-learning اگه اسمشو بذاریم یا نمیدونم آموزش مجازی به اضافه اینکه که به هلپ دسک خیلی سادم هست یعنی برای شرکت ها و سازمان ها و افرادی که یه کالایی میفروشن مثلا فرش میفروشند یا نمیدونم یه سنایه دستی میفروشن یا خدمات مثلا یه چیزی کالایی میفروشن میخوان خدمات پس از فروش دارن اینها به جایی که تلگرام خب تقریبا دیگه تلگرام یه ابزاریه که همه ازش استفاده میکنن هیچ شرکت هیچ بیزنسی ازش نمیتونه سرف نظر بکنه میتونن به جایی که تلگرام شخصی پرسونلشون رو بدن و بعد این داده ها از به این بره و اون شخص خاص حالا از اون شرکت بره بیرون یا هر اتفاقی که بیفته میتونن بات تلگرام مخصوص به کاستومر ساپورتشون داشته باشن و ما این سرویس رو رایگان ارائه میدیم به همه شرکت ها و افراد میتونن به شکل رایگان به مشتریهاشون سرویس کاستمر ساپورت کاستومر سرویس افتر سیلس ساپورت هر چیز که اسمشو میذاریم از طریق این بستر به شکل خیلی هرفی تر به مشتریاشون ارائه. بدید. کارت ویزیت ادریس باتو میزنید. بدل اینکه که بات ساختنم تنکاری که باید بکناین اینه که از بادفادر یه توکن بگیرن. خیلی ساده است. در حد 30 ثانیه وقت لازم داره و هیچ دانش تکنیکی هم نمیخواد. خیلی هم قشنگه، خیلی آفیشال هم میتونه باشه دیگه. چون بعد چه میدونم اون مسئولم عوض بشه از اونجایی که ایمیلی که پشت سر این سروس قرار داره عوض نمیشه. ده. ایمیل مال اون شرکت یا مال اون سازمان اون بات مال اون سازمان یعنی مالکیت دیتا مالکیت بات تلگرام مالکیت ایمیل همش در اختیار کسیه که مالکیت اون کسب و کار رو داره دیگه هم ظاهر حرفه‌ای و تحت قالب یه برندی و هم مالکیتش مسئله حل میشه درست خود من به عنوان اولین استفاده،, از اولین استفاده کننده های پرتاک دوست دارم خدمات کوچینگم و که حالا الان امدتاً به شکل تلفنی ارائه میدم روی پرتاک بیارم و از طریق تلگرام و متنی هم این خدمات رو ارائه بدم مدنی یا صوت هم تو به میتونه بفرسته الان, الان ما چیزی که داریم هم عکس هم صوت عکس و صوت هم هم میتونه بفرسته تو دیگه صوتیه که آفلاینه دیگه صوتیه که ریل تایم نیست دقیقا نه. تو هم یه چیزایی داشتی میگفتی یه کاری میخواد بکنی با پرسی. آره من اول از همه این که از سرویس صح... رایگانش استفاده بکنم چون مثلا تو پادکستی که دارن دوست ندارم مستقیما ایمیل یا آی‌دیمو بدم. <تصفيق> اما اصلا تو دیگه می‌دونم افراد تمامیم دارن از طریق تلگرام ارتباط برقرار بکنن. برای همین احتمالاً یه دونه بوت بسازم بذارم تو با... تو پادکستم که که میخواد از طریق با می می اون بات با اون ربات برقرار بکنه. داخل بات میره، مسیجو میزنه، اون از طریق ایمیل میرسه به دست من. هم میدونید شخصیت من اون پشت میمونه همون که اون طرف میدونید خیلی راحت از طریق تلگرام استفاده ارتباط قرار بکنه در کنارشم اگر بخوام چه میدونم خدمات خاصی بدم چون با چند دفعه مثلا سوال لینوکسی میخواستم بپرسم من خب یه کار کردم خب ترجیمی مف مفت جواب ندم یعنی میدونید تو شبایی می‌کنی به جای دخترم خیلی می‌خوره یعنی می‌دونی تو باتتو میدی به پسره و میگی مثلا یه سشن مهلت داری که با من صحبت بکنی اوکی یه سشن تموم شد حالا اگه باز با من صحبت بکنه می‌تونی چه می‌دونم پکیجا من بدی رو میدم یا یک ساعت مهلت میدم بخو منو بزنی آره اما واقعا ماظرا می‌تونه لحاظ آموزش اصلا ما باید می‌گفتیم در مراسم خواستهگاری میشه از این استفاده کرد که نخوایم نیت این پسر مستقیما خواسته داریه اره. در کل به نظر من میگم جدای از همه اون نمیخواهم اینجا واژه بلشت رو بکنم بلشتی که هولواش این استارت استارتاک هستش و چه میدونم خیلی محصولم عالیه واقعا خارقلاده از ما میخوایم دو, دو ورل بره پلایس و اینجور چیزا اه. امیدوارم این حس مینا با شنونده منتقل شده باشه که واقعا یه چیز خیلی شخصیه در نهایت ما باور داریم به کاری که داریم می‌کنیم امیدوارم و حتی خودم ازش استفاده کنم من خیلی دوست دارم این دوری... فقط دوست دارم کارام انقدر بره بالا که بتونم از طریق این موزیک زندگیمو بچرخونم چون بتونم تمام زندگیمو وقت این کار بکنم چون دارم داره تقریبا تقریبا تو رو می‌باره آره نه نه نه من اصلا تا الان در کل اومدم دارم معرفی بکنم دا به برای اینکه بتونن استفاده بکنن بسیار عالی این قرارو پادکست شما روی کانال شما قرار میگیره دیگه منتشر می‌کنی این پادکست دو منظوره است یه پادکست که آرش داره به نام رادیو دال که اونجا منتشر می‌کنی این پادکست ما فکر این پادکست حل هوای هر دو تا پادکست رو داره اه، دقیقاً اه، یعنی اینو تو میتونید توی رادیو دال منتشر کنی آدرس شجوری اون رو چجوری میتونم پیدا کنم؟ هم تو اگه تلگرام رادیو دالو سرش بزنم پیداش توی تلگرام میتونم پیدا بکنم؟ اره. از یه طرف دیگه هم که این پادکست جانبی 822 پادکست من محسوب میشه <سؤال> که اگر کسی تو حالا گوشش نکرده میتونه رو اینترنت رو گوگل پیدا کنه روی سایت من علیساخوابتی دات کام بره رو آیتونز میتونه پادکست 822 رو سرچ بکنه یا روی تلگرام کانال پادکست 822 بردادش... همشهر؟ <تصحیح> همشهری هست چون من همشهری <آگر> همشهری عادت همشهریه که نه <تصحیح> صفحه عمل رزومه ها این سو به سراسر کشور <تصحیح> آره اما تجربه جالبم بودش این کار امیدوارم این حسی که ما داریم منتقل شده باشه به افراد ي... ي... اگر هم منتقل نشد یه پاکست دیگه زر بود که سعی میکنیم حتما حتما دیگه خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی من لذب بردم آقا روز خیلی زیبای بارونی هم بودش میشه سبودیم رو زرد میکردیم مدنه هار من با ما برم با یه لیست عظیمی از باگ ها با مسائل نهایی که نکات ریزی که در طرف بشه و ان همین روزها لانچه آره دیگه قرار ما بگیم یک شنبه دیگه انشالله یک شنبه دیگه تو میخوای تاریخ نمیذیش دو در قرار شد این کارو خودت گفتی دو در نمیکنه یه تاریخ نه, نه. میگه سه یک شنبه قرار اینو یه یک شنبه قرار بمالو آره یکم به ظاهرش برسین دیگه انشالله فانکشنالیتی ها تکمیلن بسیار روی خیلی ممنون تا برنامه دیگر به درود درد نکنه که تا اینجا رو گوش شدید مرسی خدافز خدافز همک مستوب دیگه